حاضر جوابی بلبل بل. روزی بود و روزگاری بود یک باغبان بازوق و خوش سلیقه بود که باغی سبز و خرم داشت در این باغ انواع گلهای زیبا و خوشبو فراهم آورده بود او هر روز بامداد پیش از آفتاب در کنار چمن ها و گل قدم میزد و از بوی خوش گلها و هوای تر و تازه صبح و تماشای سبزه ها لذت می برد و از بس همیشه با نشات و خند رو بود دوستانش او را پیر زنده دل می‌نامیدند. پیر زنده دل عقیده داشت کسی که هر روز سحر از خواب برخیزد و چند دقیقه در هوای پاکیزه و با تراوت صبح در کنار گل و سبز قدم بزند هرگز دلش پیر نمی شود و همیشه با نشاط و زنده دل و خوشحال خواهد بود او در میان گلهای بسیاری که در باغ خود فراهم کرده بود به یک درخت گل سرخ که از همه گلها زیباتر و خوشبوتر بود خیلی علاقه داشت برای همین هر روز دانه دانه گلهای آن را تماشا می کرد و می بویید و می گفت بلبلها حق دارند که اینقدر آشق گل هستند سبزه و گل صفای زندگی و مایه نشات جان ما هستند در صبح یکی از روزها که هنوز هوا به خوبی روشن نشده بود باغبان بنابر عادت همیشگی در باغ قدم میزد تا اینکه به درخت گل سرخ رسید روی درخت بلبلی را دید که روی یکی از شاخه ها نشسته و با نوک خود برگ های یکی از گل های زیبا را پیش و پس می کند و سر خود را در میان گل فرو می برد و چهچه چه می زند و آواز می باغبان قدری ایستاد. به آهنگ دلنشین بلبل گوش داد و از تماشای خوشحالی بلبل در کنار گل خرسند شد اما از پرپر پر شدن گل دلش میسوخت و چند لحظه طول کشید تا بلبل حضور باغبان را حس کرد و پرواز کرد روز بعد هم وقتی در هوای تاریک و روشن صبح و آنجا رسید باز بلبل را دید که یکی از گلها را پریشان کرده و از بوی گل بیهوش و قزنخان شده باز هم بلبل پرواز کرد و باقبان از اینکه بلبل بل یکی یکی گلهای عزیزش را پرپر پر می کند خیلی غمگین شد و با خود گفت بل بل حق دارد گل را دوست بدارد اما گل برای تماشا کردن و بوعیدن است نه برای پرپر پر کردن و پریشان کردن این که نمی شود من زحمت بکشم و گل پرورش بدهم و بل بل بیاید آن را پرپر پر کند روز سوم هم باز بلبل را دید که با یک گل دیگر گرم گفتگو و راز و نیاز است و برگهای آن گل هم پای درخت ریخته. دیگر باقبان از دست بلبل خشمین شد و گفت وقتی بلبل از آزادی سو استفاده می کند سزایش قفس است. دامی و تله‌ای در میان درختان گل گذاشت و بلبل را گرفت و او را در قفس زندانی کرد و گفت قدر را آزادی ندانستی حالا اینجا باش تا بفهمی که پریشان کردن گلها یعنی چه بل بل وقتی خود را در قفس دید اعتراض کرد و به باغبان گفت ای دوست عزیز من و تو هر دو دوست گلیم تو گل را پرورش می دهی و باعث خوشحالی من میشوی. من هم پای گل سرود میخوانم و مایی دلخوشی تو می و همونطور که تو آزادانه در گلستان گردش می کنی من هم می آزاد باشم. برای چه مرا زندانی کرده ای؟ باقبان گفت نغم سرایی به جای خود اما تو روزگار مرا سیاه کرده ای و چند گل نازنین مرا آزرده ای. وقتی اختیار با خودت هست بی اختیار میشوی و گلها را پریشان می کنی. جای تو اینجاست بلبل جواب داد ای آدم بیانصاف تو با زندانی کردن من که نمی گذاری در گلزار بگردم دل مرا شکستی و آن وقت از مکافات عمل سخن می گویی؟ اما فکر نمی کنی که اگر مکافات وجود داشته باشد گناه تو از من بیشتر است چون من گلی را پریشان می کنم اما تو دلی را پریشان می کنی سخن بلبل در باغبان اثر کرد از جواب او خوشش آمد و بلبل را از قفس آزاد کرد بلبل بعد از اینکه آزاد شد رفت روی شاخه گل نشست و به باغبان گفت حالا که در حق من نیکویی کردی من هم به تو نیکویی می‌کنم بدان که در زیر همین زمین که روییش ایستاده‌ای یک کوزه طلا پنهان است بردار و خوش باش دهقان زمین را کند و سخن بلبل راست بود به او گفت خیلی تعجب می کنم که تو کوزه طلا را در زیر خاک می بینی اما چطور دامی که من برای تو گذاشته بودم ندیدی و در آن گرفتار شدی بلبل جواب داد آری علتش دو چیز است یکی اینکه که هر قدر کسی بینا و دانا باشد گاهی پیش آمد و تصادف روزگار که نامش را قضا و قدر می او را گرفتار می کند دیگر اینکه چون دوستار کوزه طلا نیستم آن را میبینم و میگذرم اما چون دوستار گل هستم در هوای عشق گل دیده و گوش و هوش خود را از دست دادم و در میان درخت گل بدام افتادم همه چیز وقتی از اندازه خارج شد مایه رنج است حتی دوستی زیاد مولبول این را گفت و باز به سراغ گلها پرواز کرد Thank you.